یکی از لوازم صحبت آن است که خانه بپردازی یا با خانه خدای درسازی. حکایت بر مزاج مستمع گوی اگر خواهی که دارد با تو میلی. هران عاقل که با مجنون نشیندد نباید کردنش جز ذکر لیلی.